تکه سوم هی به خودم می گویم بلند شروع جا پاشا دیگر و هی نمیتوانم رفته بودم برای خودم پاستیل بخرم و بر نگردم خانه هی بر نگردم هی بر نگردم باباداد داد میزند من کی باید برگردم خانه؟ ماما میگوید هیچ وقت لیلا خامله نیست هیچ بچه سه می نمیزاید که شبانه بزرگش کنه. شبانه ایستاده گوشه دیوار رو گریه می کند امتحانش را بد داده شبستری کارتهایم را پرت می کند روی میز اینها که ناقص است تاس میریزن جفت چش میآید لیلح رو میکوبت روی میز شبانه می به دیوار رو گریه می کند. بازی بلد نیست آخر می تو که نبودی مادرت مرده بلیتم را پرت میکنم توی صورت نگهبان هواپیما می پرد. گوشی را دستم میده مادر امیرعلی پشت خط است گوید تو را به خدا بچه امتحان نهایی دارد تلفن را می به دیوار دلوردهش می ریزد بیرون چیخ میکشم خسته شدم شوهرش با دندان های زرد می خند. را میخورده شکسته لیوان را جمع میکند و سرم را میگیرد توی بغلش. میپرسم این خیابان ته ندارد؟ میگوید کی این نمیدانم. شاید هیچ بر. دیگر باید از جایم بلند شوم بس از دیگر. تمام شب با چشم باز کابوس دیدم. مامان گفت یک استکان گلگاف زبان بخور. نخوردم. کنکور که ندارم یک قرار کوچک از در سفارت که تا ظهر تمام می شود و می رود پی کارش اما خوابم نبرد کمی زود رفته بودم به رخت خواب شاید به خاطر این بود اولش یک فیلم گذاشتم بیگلبوفسکی برای بار سوم. بعد گفتم ولشگان حالا فیلم دیدر چیز تو که می ساعت چهار و نمی صبح بیدار شوی؟ رفتم زیر پتو اولی مری چرخیدم بعد آمد. مامالو انگار مرا میخورد. هی نشستم، هی پا شدم. اما آخرش چشمایم تا صبح باز ماند. بس که کابوس خواب ماندن و نرسیدن به قرار سفارت را دیدم. هر بار که پلکایم روی هم رفت، انگار که فنر زیرشان گذاشته باشند، پریدند و چشمایم باز ماند. باز باز. دیروز داشتم همینطوری برای خودم کوهن میخواندم یعنی فیلم کویلیز را دیده بودم. بعد حالم انقدر بد شده بود که مجبور شده بودم توی ماشین با صدای بلند لئونارد کوهن بگذارم. از دیشب تا همین حالا از مغزم بیرون نرفته این آهنگ لعنتی. بعد نه که قاطی شده با کویلز. هی hey, و من کابوس خون می بینم. خون و دیوار و زندان و از اینجور جور مزخرفات. دلم میخواد مغزم رو بیرون بیاورم و با برس بسابم. هی hey, بسابم، هی hey, بسابم. شاید این چیزهایی که رویش چسبیده شده کنده شود بره بعد توی سینک. اینطوری که نمیشه. باید بخوابم. این ساعت هم که زنگ نمیزنن. یکی نیست بگوید خب نزند. تو پاشو یه کاری بکن، چیزی ببین، چیزی بخان. انگار ساعت اجازه من است و باید زنگ بزنه تا بتوانم از جا بلند شوم دیگر تمام شد. گناه نکردم که بیدارم. ساعت هرچه باشد. بلند می و میروم بیرون. می دانم که چشمهایم پف می کند و زیرشان سیاه می شود. عکس ویزایم زشت می شود. اما بشود. به جهنم به جایش خول نمی دم صبحی. میچرخم چرخم با هم پهلو. چرا آشبازخانه روشن است. صدای شیر و آب و, و میآید یعنی مامان هم بیخواب شده مگر ساعت چند است موبایلم را از زیر تنم میکشم بیرون روشنش میکنم نورش چشمم را درد می آورد نور یک تکه سفید کمرنگ می شود و لایان آن عددها ظاهر میشوند مثل فیلم عكاسی در تاریخ خانه هنوز چند دقیقه مانده تا چهارونیم این ملافه هم که خیس و موچاله شد بس که قلت زدم و عرق کردن. می میروم بیرون مامان پشت به من ایستاده رو به سینک چیزی را می شوید که نمیبینم چیست. لباس خواب سفیدش را پوشیده. همانی که گل‌های ریز آبی دارد. بندش را هم پشت کمرش پاپیون کرده، نه رامین برایش خریده. او هم یک بند آن را می پوشد. گله سر مرا هم زده به موهایش. گمش کرده بودم. نمیدونم از کجا برداشته. دیشب آمدم موهای خودم را رنگ کنم. گفتم حالا که حمام بگن کشیده می شود، بگذار موهای مامان را هم رنگ کنم. دو هفته و زود که فرقی نمی کند. رفتم برایش بلوند خریدم. اولش نگفتم براندست گفتم همون قهوه یه همی بعد که شست رنگش معلوم شد. چیزی نگفت بهم به چقدر هم بهش میآید؟ دلم میخواهد بغلش کنم و فرو بروم توی دل تو سلام مامان. چرا بیداری؟ جا میخورد؟ تابه را آب میکشد. کشد. میگذاردش روی گاز؟ با خنده نمیگوید مرد شور ببرد که اینطور آدم را میترسانی. با خ میگوید خوابم نبرد دیرت نشه؟ هنوز زوده؟ کم کم حاضر میشم چه گل سر قشنگی؟ انگار نه انگار. در تابه روغن می ریزد. از کاسی کنار دستش یک موش سبزی در می آورد و می ریزد توی روغن. با انگشت های چاقش قاشق را بدون هیچ حرکت اضافهی در تابه می انگار از ازل کارش شخصاندن قاشق در تابه بوده. بوی شوید می پیچد در خانه. خانه رشتمان را به یادم می آورد. چطور بدون مامان کنه؟ برو لباس بپوش الان صبونه حاضر میشه. میروم توی اتاق. سرش را هم نمیگرداند که نگاه هم کند. میدانم چشست، بغض دارد، میخواهد چشمایش را نبینم. دیشب هی گفت گلگاف زبان بخور که نترسی. گفت سوال ها را اینطوری جواب بده، این کار را بکن، آن کار را نکن. میخواست فکر کنم راضی به رفتن من. اما خرکه نیستم. میدانم ته ته دلش میخواهد کارم درست نشود. گفته بود برو اما من تنهایی کنم؟ کیسه كیسای خریدها رو گذاشتم زمین سال دوم بودم مامان هنوز عادت نکرده بود به تهران یک شانه تخمه مرغ خریده بودم پنجاه تونان دو کیلو مرغ یک عالمه میوه دستهایم داشت کنده میشد از کیسه کیسهها گفتم برنج که داریم میع نگفته فقط چهار روز میخوام برم چرا این همه خرید کردی؟ راست میگفت اردوی تبریز چهار روز بیشتر نبود اما به دو هفته خرت پرت خریده بودم اردو رو دانشگاه گذاشته بود. میخواستیم تراکتور سازی را ببینیم. همه می آمدند. شبانه، لیلا، میساق، حامد. لیلا زن میساق نشده بود هنوز. دوستش داشت فقط. یعنی میساق دعوتش کرده بود جلسه داستانخانی. ما هم رفته بودیم. اما لیلا هنوز چیزی نگفته بود بهش. نتوانسته بود. من میساق را از کانون فیلم میشناختم. لیلا گفته بود بیا حرف بزن و شوخی کن تا میساق دوست شود با جمعمان. گفته بودم مگر من دلغکم بعدشم مامان را چه کنم؟ گفته بود مگر رامین نیست رامین نبود رفته بود رشت پیش امه فخری سکته کرده بود. ایار برایم مهم نبود مامان تنها می مان. خسته شده بودم از هر روز زود برگشتن و مواظب به مامان بودن دوست داشتم مثل همه آدم هایی روی زمین بروم اردو مامان مامان که نبودم پولش رو هم خودم جمع کرده بودم مامان گفته بود برو وسایلم را که جمع کرده بودم رفته بودم خرید گفتم چشکار داره یخچال دو هفته پر میمونه. فقط تو رو به خدا این بار دیگه نونا رو بیرون نذار. اینجا که رشت نیست، خشک میشن تو این هوا. ترسیده بودم دست تنها بماند. بازیادش برود هوای اینجا خشک است و بینان بماند. تهران نمیرفت خرید. نه که دیسک کمر داشت، پله ها اذیتش میکرد. بلد هم نبود، جای مغازه ها را یاد نمیگرفت. میترسید گم شود. مشکلش خرید نبود. وقتی رفتم فهمیدم. تبریز که رسیدم با موبایل لیلا بهش زنگ زدم. گفت ماست ندارد. روز بعد گفت شب از خانه روبرویی صدا می آمده تا صبح نخوابیده از ترس. شبش خوابم نبرد. هی hey, خواب دیدم شیرهای جنگل سراوان دارن پارا می میکنن. من هم دستم بهش نمیرسد. نیم ساعت یک بار میپریدم از خواب. از جایم بلند شدم. از لابی هتل زنگ زدم خانه مادر و برامین گفتم برگردد تهران. گفت چرا گریه میکنی؟ الان برمیگردم. برگشت. از دیشب با خودم قرار گذاشتم امروز فکر کردن به چیزهای بد ممنوع است. ده بار با خودم گفتم، تنها ماندن مامان تقصیر تو نیست. تقصیر تو نیست که بابا مرده. می نشینم جلوی آینه موهایم را درست کنم. هنوز عادت نکردم به موی کوتاه. نه که تا صبح کشتی گرفتم با بالش، هر یه موی یک طرف رفته. به این راحتی ها هم مرتب نمی‌شوند. باید با اتو درستشان کنم. نباید قصه بخورم، باید قدر زندگیم را بدانم. همه حسرتش را می خورن. باید به چیزهای خوب فکر کنم به زندگیم در فرانسه به قدم زدن در خیابانهایش به سینماها به پنج سال دیگر که دکترا می گیرم. به پذیرشم به کمک از که گرفتم به دانشگاه به مسئول دپارتمان مکانیک که برایم نوشته باعث افتخارش است من کنار دانشجوهای دیگرش درس بخوانم. خوشبختی همیناست دیگر اصلا مگر همان اول نشستم با مامان حرف زدم. گفتم مادر من، وضعیت این توریست و آنطوری، بروم یا نروم؟ خودش گفت باید پیشرفت کنی، فکر من نباش، گفت تو افتخار منی، هیچ وقت جلات رو نمیگیرم و از این حرفا، حالا این اداها چیست؟ از صبح نگاه هم نمی کند. گفته بودم مگه به خاطر من نیومدی تهران، من که برم فرانسه دیگه اینجا کاری نداری، برگرد رشت، داشت روی تخت رامین ملافه می کشید. گفته بودم میری توی خونه خودت راحت میشی از اجاره نشینی. هفته یه بارم خوهرت بهت سر بزنه. خوبه دیگه؟ کسی رو ندارم اونجا. خاله کسی نیست؟ کس من خواهرم نیست. اینجا تو هستی رامین هست. من که دیگه نیستم. رامین که هست؟ رامین نیست تا یک سال دیگر دهلوران طرح دارد. بعد هم که برگردد مگر چقدر میتواند پیشش بماند. برود سر کار همه باید کشیک بماند. بالاخره باید عادت کند به شبها تنها ماندن. اصلا مگر قانون طبیعتی نیست. هزار سال است که بچه ها میروند، هزار سال هم هست که مادرها تنها میمانند. باید یک وقتی کنده شوم از مامان. نباید هی فکر کنم قصه خورده گم شده پایش شکسته سکته کرده من که نمی توانم تا ابد پیشش بمانم این همه آدمی که میرون نه خودشان از قصه مردن نه مادرهایشان شاید هم به قول شبانه باید یک خانه بگیریم و مامان و ماهان را بگذاریم تویش تا هیچ کدام تنها نمانند این موها هم که تکلیفشان معلوم نمیشود بهنازی خانم گفتم یک جوری اینها را بزن که راحت چند مدل بشود گفت و خالشان را نداشتی همه را به روز روی پیشانی همه را می ریزم روی پیشانی اینطوری تا وقتی برسم سفارت زیر روسری خراب نمیشوند تافت را که برمیدارم صدای مامان بلند می میشود رجا صبونه چیده. سرش را گرم کرده به شیرین کردن چای و قاشق گذاشتن توی بشقاب. چای گذاشته و شیر و خورما و نیمرو با شوید پریروز رنگ زد گفت داری میای سر راه شوید بگیر گفتم مگه کمرت درد نمیکنه میخوای بشینی شوید پاک کنی؟ گفت لازم داریم بگیر نشست همه را پاک کرد بعد پهنشان کرد کف اتاق پذیرایی روی ملافه پنکه را هم بالای سرشان روشن کرد بعد هی گفت کمرم درد گرفت گفتم مگر نگفتم نکن فرداش یک قوطی آورد پر از شویده خشک گفت داری می روی اینها را ببر یک وقت مهمان داری می‌خواهی با قلقاتوقی سبزی پلو چیزی درست کنی گفتم مامان حوصله داری فکر کردی من میرسم غذا درست کنم این شویدها هم میریزد توی چمدان لباس هایم را گنت می کشد. میگویم چه خبره امروز انقدر صبونه درست کردی؟ جواب نمی دهد. توستر می پرد. مامان نانها را میگذارد در سبد. لایه دستمال کدری قرمز چهارخانه. سر صبحانه از قیافه در نمیآید. هی به خودم می گویم بگذار من هم بروم توی قیافه و نخورم. اما دلم نمیآید. دلش میشکاند. تازه. شاید آخرین باری باشد که این صبحانه را می خورم. کی بی خواهد روز اول دانشگاه توی فرانسه صبحانه جلو هم بگذارد. شوید هم که آنجا گیر نمیآید. گیرم شوید خوشح را هم بردم. کی حال دارد شوید به خیساند سر صبحی. اصلا شاید مجبور شوم آن روز صبحانه نخورده بروم سر کلاس. صبحانه مامان صبح را پر رنگ می کند. روز را خوب می کند. این صبحانه صبحانه روزهای مهم است. روز امتحان نهایی، روز اول دبیرستان. روز امتحان رامین و از همه مهمتر روز کنکور آن روز هم همین صبحانه را خوردم بعد رفتم سر جلسه و مغزم را ریختم روی کاغذ آنقدر مستطیل سیاه و سفید پشت هم قطار کردم تا برگه پاسخنامه مثل قالیچه سلیمان من و مامان را از رشت آورد تهران میگوید حیف اون موا نبود فرانسه درسام زیاده باید کارم بکنم مگه دیگه وقت میکنم به این مایه بلند برسم یک لقمه دستم می‌دهد با دهن پر میگویم تازه اتاقم حمومم هم نداره شستن این موی فرفری برام دردسر میشه تو هم نیستی که اگه گره خوردن بازشون کنی باز حرف نمیزند حال و حوصله فضای سنگین و غمگین و اینجور چیزها رو ندارم تازه بخت آدم باید بلند باشه مامان مو چه اهمیتی داره نمی خندد صبحانه خوب درست می کند، اما زهره مارش می کند با آدم. یادش نمیآید جواب پذیرشم را که گرفته بودم دو روز نشسته بود پای تلفن زنگ زده بود به این و آن و هی پز داده بود که دختر من دکترا قبول شده گیرم گریه هم کرده بوده که بی کس و تنها می شود گفته بود آن از شوهرش این هم از بچه هایش. اما بالاخره خوشحال بود دیگر؟ سیر نریختم که بخوری دیرت نشه باژس گفتم ساعت پنج رو همینطوری هم زوده. مگه با ماشین نمیری؟ نه برگشتن میخورم به تره ترافیک. جریمه میشم. شیر میریزم توی چایم تا سرد شود. لیبان را سر میکشم. قلوب گنده، هرس های گنده را هم میدهد پایین. مرسی مامان. چرا نخوردی؟ خوردم. تونتون خوردم. سیر شدم. بلد میشم و زنگ میزنم به آژانس می گوید یادش مانده باید بیاید و 20 دقیقه دیگر جلوی در است. دیشب لیلا گفت صبح می تواند بیاید دنبالم. گفتم چه کاری است آخر خودت خواب درست و حسابی نداری صبح زود بلند شوی بیایی دنبال من همه ی روزت خراب می شود. توی سفارت هم که نمی گزارند بیایی. گفت بیا ماشین را بردار. طرح دارد. گفتم نمی خواهم. خودت می خواهی بروی روزنامه لازمش داری. گفت پس خودم بیدارت می کنم. بیدارم نکرد. خواب مانده میدانستم خواب می‌ماند. شبها تا صبح خواب می را می بیند. باید برش دارم با خودم ببرم. سمیره هم آنجاست. خوب می شود روحیش. می نشینم پای آینه. هم ابروهایم خوب است هم موها. فقط زیر چشمایم سیاه شده. کانسیلر را بر میکشم می روی سیاهی زیر چشما. حالا انگار تا صبح تخت تخت خوابیدم. خط چشم نمیکشم، کشم. صورتم طبیعیتر به نظر می آید. سایه قهوهی می و ریمل. چشم هایم حالت می گیرند. را رو روی چشم می گذارم. لبهایم را می کشم تو. بابا گفت روجا ماهی شو. لبهایم را کشیدم تو. ماهی قرمز توی تون گفت بابا. بابا. من هم گفتم. مادرجان گفت این بچه را لوس میکنی محسن. پروژه گونه را میکشان در گودی لبها. صورتم قرص و محکم می شود شبستری ببیند ببیند میفهمد چقدر مطمئن رفتن فقط مانده روج لب روج لب کم رنگ می زنم خارجی ها زیاد آرایش نمی کنند شومیز قهوه را از چوب لباسی برمی‌دارم برچسب قیمتش را جدا می کنم. به فروشنده گفتم آقا رنگش با آفتاب نمی رود گفت مگر مانتو تنت نیست خانم. آفتاب کجا بود شبانه گفت میخواهد بدون مانتو بپوشد توی فرانسه روز اول دانشگاه همین را میپوشم شیک و ساده است خوب است برای یک دانشجوی خارجی نمیگویم ندید بدید است یقه انگلیسیش هم توی عکس خوب میافتد. تنها چیزی که بد است مانتوم است كهنه شده دیشب داشتم اتویش میکردم مامان گفت یک مانتو بخر با این درب و ها نروی بیرون گفتم برای چه مانتو بخرم چند هفته دیگر دارم میروم دیگر مانتو میخواهم چکار؟ گفت مگر نمیخواهی بروی سفارت گفتم آنجا مانتوم را در میآورم مامان نمیداند که در سفارت کسی مانتو نمی پوشد میروم توی حال در آینه قدی به خودم نگاه میکنم. خوب شدم. ماما نیست خوابیده انگار میروم توی اتاقم پوشی قرمز و کیفم را برمیدارم نگاهم هم میافتد به فیلم های ولو شده روی میز لیلا گفت برایش فیلم ببرم فیلم های آرام برای شبها که تنها می ماند. گفت میخواهد وقتی از سر کار برمیگردد به هیچ چیز فکر نکند تند بین فیلم ها می گردم چندتا میگذارم توی کیفم داد میزنم. خدافظ مامان ایستاده توی چارچوبه در اتاقش به سلامت نگران نباش درست میشه. نگاه نگاهم یک ثانیه گره میخورد در نگاه مامان آن یک ثانیه یخ می زند و چند ساعت می شود. به زور نگاهم را میکنم و بیرون میروم. آژانس دم در است. یک پژو سیاه با راننده‌ی جوان و خوابالو. هر چه صبر میکنم راه نمیافتد. نگفتن بهتون سفرت فرانسه میرم. خیابان نوفل زیر پل هافز؟ میگویم بله. هر چه میگویَم میخواهم فرانسوی اش را هم بگویم. عین روانی ها. هی از خودم درس میپرسم. بس که می ترسم بروم فرانسه و بخواهم چیزی بگویم و نتوانم هی hey, با خودم تمرین می کنم. حالا مثلا در فرانسه سوار تاکسی شدهام. میخواهم بروم سفارت ایران پاسپورتم را تمدید کنم. تاکسی یک پژوه سیاه همین است، اما راننده سیاه پوست است. یک سیاه الجزایری. لبهایش پهن است و دندانهای سفید درشت دارد. مثل مرد سیاه پوست فیلم مرسی برای یک رویا. فرقش این است که آدم خوبی است میگویم؟ بونجو موسیو؟ اونو دینا سیل میپرسد خارجی هستی؟ میگویم بله؟ میگوید چقدر خوب حرف میزنی؟ اصلا لهجه نداری؟ بعد میپرسد در همان کشور خودت زبان یاد گرفته ای؟ با افتخار میگویم بله و بعدش شاید دلم برای کوچه پس کوچه های خیابان ویلا تنگ شود برای درس خوندن میرین راننده دارد با چشم های سرخ و براغش از آینه به من نگاه میکند بله، پذیرش دارم. عجیبه، همه دارن میرن. دخترخاله منم هفته پیش رفت کانادا. با گودی کف دست چند بار میزند روی فرمان. چرا نرین؟ بمونین اینجا چی کار کنیم؟ میساق دست کشید به پیشانیش. دروغ میگم روجا؟ بمونه اینجا چی کار کنه؟ اصلا هممون، بمونیم اینجا چی کار کنیم؟ مامان سینی چای را رو گذاشت روی میز. میساق گفت شما رازیش کنید خدا میدونه دلم نمیخواد بدون اون برم باور کنین داره مجبورم میکنه مرد به آن گندگی داشت میزد زیر گریه لیلای نامرد به کجا رسانده بودش او که همیشه مرتب و تمیز بود حالا با تیشرتی پر از لکه آمده بود خانه ما تا من و مامان به دادش برسیم مامان گفت زندگیت حیف پسرم نمیشه بمونی همینجا درس بخونی؟ نمیتونم اگه بمونم دلم راضی نمیشه به این زندگی، خودم میدونم. نمیخوام از حالا برم سر کار. از کارمندی متنفرم. اینجا راه برام تموم شده. رفتن یه دنیای دیگه جلوم میذاره. به لیلا میگم بیا بریم. اگه نتونستیم بمونیم، اگه دوست نداشتی برمیگردیم. قبول نمیکنه. به خدا حیفه. من پذیرش دارم، فان دارم. بمونم اینجا چیکار کنم؟ اگر نمیرفت پشیمان میشد. زندگیش به هم میریخت. از لیلا هم متنفر میشد که جلاش را گرفته. من هم پشیمان می شدم اگر نروم ده سال دیگر نمینشینم جلوی خودم هی hey, مثل این راننده آه بکشم نمیگویم رجا اگر میرفتی زندگیت خوب میشد. هی hey, حسرت نمیخورم. میخورم میدانم حسرت نمیگذارد زندگی کنم نمیگذارد خوشبخت باشم همه خوشحالی هایم رو میخورد لهم می کند اصلا رفتین اونجا یاد ما بیچار هم باشیم به سلامت پیاده میشوم. چه خبر هست این وقت صبح اینجا؟ هنوز هوا تاریک است. آن وقت این همه آدم، این همه ماشین، نصف آدم ها توی ماشین ها خوابند. یعنی از دیشب آمدند. بقیه پوشه به دست جلوی در ایستادند. این پوشهها قالیچه همه همهمان را برمی‌دارند می‌برند فرانسه. صبح هواسم سر جایش نبود. نگران چیزی را جا گذاشته باشم. دیوانه شدم با این مدارک. مامان گفت اینقدر اینها را نریز روی زمین و رو دوباره جمع کن. آخرش یکی را گم می‌کنی. گفتم گم نمی کنم نکارت یکی رو گم کرده باشم. پوشه رو باز می کنم. تند می گردم. نامه پذیرش دانشگاه، فیش حوالی شش هزار یورو لعنتی تجمه شناسنامه و ریز نمرات و مدرک تحصیلی و گواهی کار و سند خانمان در رشت و اجاره نامه خانمان در تهران پاسپورتم با 5 سال اعتبار و انگیزه نامه دستنویس و نمره امتحان زبان. کپی ها را پشت سر هم چیدهام. چیزی کم نیست. ده بار از دیشب چک کردم واساسی شدهام مثل ما در جان هر بار که میآید تهران روزی سه بار زنگ می زند به امه فخری میگوید گاز را خاموش کولر را کم و در خانه را قفل کند باز هم شبها از خواب می پرد که نکند دوز امه را خفه کرده باشد دو روز هم که میگذرت برمیگردد رشت و مامان راحت می شود کسی می زند روی شان باید بری اسم نویسی اسمت رو توی لیستی که دست اون آغاز بنویس به نوبت که تو لیست میریم تو به امتداد انگشتش نگاه می کنم. مرد ای کاغذ به دست آن طرف میله های استاده. کنار در آهنی. چند نفر دورش را گرفتهاند مردم راه نمی دهند که به زور از بین بازوهای مردهای و شلوار پوش و زنهای آرایش کرده رد می میرسم به مرد. است؟ حتما سرش خیلی شروع است که در این هوای خونک دم صبح تابستان پیشانیش عرق کرده. اسم منم می نویسین؟ اسمتون؟ نفر 26م. چهار و نیم از خواب بیدار شدم، آن وقت نفر 26م. اینها ساعت چند بیدار شدن برای ایستادن توی صف؟ مامان متنفر است از صف. صف نانوایی، صف بانک، صف شیر. بچه که بودیم صبحها میرفت توی صف شیر. نمیگذاش رامین برود. شیرهای ارزان را می آورد خانه و با آنها ماستهای ارزان درست می‌کرد. همیشه چشمم به زمیلش بود که شیر کاکاو خریده باشد. هیچ وقت نمی‌خرید. ضرر داشت برای برایمان. شیر بهتر بود. شیررکاکا او را مادرجان می آورد وقتهایی که می آمد خانه تا سهم بابا را از فروش مغازه بیاورد. موز هم میآورد میآورد که قوت بگیریم تا درس بخوانیم. رامین که پزشک قبول شد امه گفت به خاطر موز هاست به مامان برخورد. مادرجان که میرفت مامان من و رامین را بر می داشت و میبرد میدان شهرداری. راه می رفتیم و بستنی میخوردیم. مامان برای رامین مداد میخرید برای من عروسک. بعد می رفتیم جهانگیر کباب میخوردیم. بهترین روزهای مان همان روزهای نمیدانم چندم ماه بود. بهتر از پنجشنبه بود که مامان صبح زود ساندویچ مرغ یا کتره درست میکرد و من و رامین را بر می داشت و میبرد تا ز آباد. سر خاک بابا. می گفت همه دور همیم. تا هوا تاریک شود آنجا دور هم می نشستیم. مامان دیگر گریه نمیکرد. گریههایش تمام شده بود. زیرانداز پهن میکرد کنار سنگ. می نشست روی آن و به من و رامین نگاه می کرد ما روی قبرها لیلی می کردیم رامین سواد داشت نوشته ها را برایم می خواند. مسابقه پرش می گذاشتیم با هم رامین از روی سه تا سنگ هم می توانست بپرد من هر کاری می کردم فوقش می توانستم دو تا سنگ بپرم سر رامین کلاه می گذاشتم روی سنگ اولی نصف قدم جلوتر می دادم. بعد می پریدم هیچ وقت نمی فهمید. سرگردانم پشت این در بسته. از مردی که اسمم را نوشته میپرسم حالا چرا اسم نوشتی؟ میستیم توی صف دیگه در و ساعت هفت و نیم باز میکنم تا موقع میتونی هرجا که دوست داری بری کجا می شود رفت این وقت صبح؟ اگر لیلا آمده بود می رفتیم صبحانه چیزی میخوردیم دلم املت دم دانشگاه میخواهد اما فعلا مجبورم کیف و پوشم را بغل بگیرم و بنشینم لبه جدول کیف و پوشه را بغل گرفته بودم نشسته بودم لبه جدول موهایم رو مشت میکردم توی دست هایم. به پنجره های خانه نگاه میکردم دم غروب بود از وقتی هوا روشن بود همانجا نشسته بودم ده بار خواسته بودم بروم بالا اما ترسیده بودم نمی دانستم چطور باید به مامان بگویم جواب پذیرشم را گرفتم آدرس شرکت را داده بودم به دانشگاه نامشان صبح رسیده بود شبان کنارم بود از خوشحالی خول شده بودم چند بار رفتم تا دم در برگشتم بعد دور سالن شرکت راه رفتم دیدم آرام نمی‌شوم اینجوری خوشی از دلم میآمد بالا جان می شد توی سرم داشتم خفه می میشدم پنجره رو باز کردم تا ته هایم نفس کشیدم تا کمر بیرون رفتم و خم شدم سمت درخت خورمالو شبانه کمرم رو گرفت و کشید تو دیوونه شدی الان پرد میشی پایین بغلش کردم و فشارش دادم ول که کردم نشست روی صندلی منو گریه کرد گفتم چرا گریه می کنی؟ تو که اینجا کنار لیلایی همه دور و برتن این منم که دارم میرم اونجا تنها بمونم ببین گریه نمی کنم. تو هیچ وقت گریه نمی کنی. تو از تنهایی نمیترسی تو از هیچی نمیترسی میری و دیگه پشت و سرت هم نگاه نمیکنی. کنی تازه کسی که میمونه رفیق نیمه راه نمیدانم این را دیگر توی کدام کتاب خوانده بود یکم بعد تازه یاد بدبختی هایم افتادم زنگ زدم به لیلا گفتم چطوری به مامان بگویم زد بشخی گفت مردشور همتان را ببرند که دارید میروید گفت فرودگاه امام نیست که بهشت زهراست همه را از من گیرند. گفت تو هم برو و خوش باش ما را بگذار اینجا تک و تنها و کس گفت میروی و اینجا زلزله می شود و همه ما می میریم آن وقت دلت میسوزد هی گفت و خندید اما ته هایش تلخی آه داشت انگار نفسش تمام می میشد ته هر کلمه اعصابم به هم ریخته بود بغض داشتم بعد از هزار سال نمیدانستم از خوشالی است یا قصه فکر کردم الان است که دلم ترک بخورد از خوشی و ناخوشی کنار هم مثل یک لیوان بلور که آب سرد و گرم رو پشت سر هم در آن ریخته باشند خانه آخر مانده بود خانه مامان پنجره اتاقم باز شد مامان خورده های نان را ریخت لبه پنجره که یاکریم ها بیایند پشت پنجره و بخورند و صدا کنند تا دلش از تنهایی نگیرد میدانستم بعد می میرود توی آشپزخانه قابلمه کته را میگذارد روی گاز و یک رو خانه پر از بوی برنج تازه لاهیجان می شود قرار بود شب رامین از دهلوران برگردد. هوا تاریک شده بود. خسته شده بودم از نشستن لبه جدول. گفتم به جهنم. بالاخره که باید بگویم. اگر همین را بگویم زودتر راحت می شدم. زنگ نزدم. خودم با کلیت در را باز کردم. پله ها را یکی یکی رفتم بالا. دست و پایم روی زمین کشیده میشد. انگار بچه بودم و نمره بدی گرفته بودم. در خانه را که باز کردم بوی سیر سرخ شده و بادمجان کبابی آمد. سلام مامان چه تیپی زدی؟ دوش گرفته بود، آرایش هم کرده بود. موهای خیسش را گوجه کرده بود بالای سرش. حالش خیلی خوب بود. آنقدر خوب که دلم نیامد خرابش کنم. پس چی؟ پسرم میخواد بیاد. الان میرسه. یکم سبکم با هم شام بخوریم. همیشه باید منتظر این پسر توحفَت بمونیم. کاش منتظر رامین مانده بودم با هم می آمدیم بالا. آن وقت یک چیزی اون می گفت، یک چیزی من. قضیه یک جوری تمام می شد. پوشه را رو گذاشتم روی میز. نیم ساعت ایستادم بالای سر پوشه و هی آمدم چیزی بگویم. اما کلمه ها هی ته گلویم گیر می کرد و توی سرم تکرار می شد. کلافه شدم از جمله های پخش و پلای مثل هم. رفتم توی اتاقم. صدای مامان بلند شد. میری ماس بگیری دلال درست کردم برای رامین. پوشتم از اینجا بردار میخوام میزو بچینم. همه ی زورم رو جمع کردم و گفتم. امدن گذاشتم اونجا که ببینی. جواب دانشگاه باورم نشد این صدا از گلوی من درآمده. یک شکل دیگر شده بود. انگار لایه گیری دستگاه تراش فشارم میدادند. حالم از این زندگی به هم میخورد که خوشیش هم گیر و گرفت داشت. در تاریکی اتاق ماندم گردی توپ بدن مامان آمد توی روشنی در پوشه را دستش گرفته بود. مثل یخزده ها به من نگاه می کرد. همهاش را پشت سر هم گفتم تا زودتر تمام شود. قبول شدم سال اول دکترا دانشگاه تولوز میشه تقبا جنوب فرانسه همون جایی که شیراست تو ایرانه باید حداقل تا دو ماه دیگه سر کلاس باشم. چراغ را روشن کرد. آمد تو و قلم کرد. گفت به من افتخار می کند. گفت بهترین دختر دنیا را دارد که به همه زندگیش میارزد گفت باید جشن بگیریم خب دیگه برنامه سفر سفر تابستونمونم معلوم شد به همه میگم دارم میرم پاریس پیش دخترم دیگر نگفتم از تا پاریس چند ساعت با قطار راه است نگفتم پول گشتن در پاریس را ندارم نگفتم ده سال تهمانده مستمری بابا را هم که جمع کنی باز هم به اندازه پول بلیطت نمیشود نگفتم با این پول نداشته کی بشود بتوانم برگردم خانه و سری بهت بزنم گفتم بگذار حالا خوشحال باشد هر چیز بدی را میشود تحمل کرد اگر یواش یواش آن را بفهمی به جایش سر به سرش گذاشتم خندان دمش گفتم بی خود دلش را صابون نزند خانه من خیلی کوچک است باید برود هتل گفت اگر هتل هم برود باید هر روز بروم و ببرمش بیرون باید همه جای پاریس را نشانش بدهم حرف زدیم خندیدیم داشتم صدای خندش را میشنیدم شنیدم که چشم افتاد به شانه هایش تکان میخوردند صورتش را در دست هایم گرفتم خیس خیس بود نفرات اول تا دهم ده به ایستن پشت میله ها توی صف الان در باز میشه انگار آب باز کردن توی لانه مورچه اینطور که یهو همه شروع کردند به این طرفان طرف رفتن چه خبرشان است همه می رفیم تو دیگر؟ اسم هم که نوشته ایم؟ بعضی از مردم می روند پشت میله ها بعضی های دیگر می روند و آدم را که در ماشینهایی رو برو بیدار میکنند. آنها هم با چشم ترسیده و پف کرده بودو بودو میآیند و جا می گیرن لای آدم های پشت میله. از جایگاه والایشان همچه چه پزی می دهند به ما که هنوز بیرون میله ها منتظر نوبتمان ایستاده انگار برنده مسابقه چیزی شدن تو نوبت من کلی مانده. حال ندارم از جایم تکان بخورم. آدمها را یک جوری از پایین از لبه جرون می‌بینم. انگار بچه هم و با مامان و بابا رامی رفته این بازار برای مامان گوشواره بخریم گوشواره های مامان لوزی بود با طلای سرنگ به همه می گفت ایتالیایی است بابا که مرد آنها را فروخت بقیه طلا را هم فروخت اولها دوست نداشت از مادرجان پول بگیرد هنوز هم ندارد. میگفت بابا به خاطر مغازه مرده. سهم درآمد مغازه را هم نمی مادرجان هر روز میآد خانه گریه می کرد. پول را می زیر قالی. قربان صدقه مامان می رفت می گفت به جان این دو تا بچه برای مغازه نبوده می گفتن تن ناسخان توی گور می لرزد اگر بچه های محسنش سختی بکشن بابا بزرگم خان نبود بقال بود نمیدانم چرا ته اسمش خان داشت اولین باری که از درس دادن پول درآوردم برای مامان یک جفت گوشواره لوزی خریدم درست مثل همان گوشواره ها شما میخواین ویزای دانشجویی بگیرید سرم را برمیگردانم دختریش شبیه کاترین دونو قدش کوتاه است اما کفشای پاشنه بلند پا کرده ماتیق قرمز زده و موهای مشکی بلندش را زیر شال نازکش باز گذاشته چه وقتی هم گذاشته برای سشوار کشیدنشان آره شما چی منم همینطور موبایلش زنگ میخورد. میگوید ببخشید و میرود. لیلا گفت من هم همینطور نه که مشکلی داشتم نه تاه خوشحال بودم که وسط این همه پسر یک دختر پیدا کردن. حالا اگر بعد از زهرا میپرسید دوست پیدا کرده‌ای میگفتم آره. اما فکر می‌کردم هیچ دختری جرأت نکرده در برگه انتخاب رشته‌اش مکانیک بزند. حالا هم حرسم گرفته بود که این دختر نازک نارنجی با موهای بور و ابروهای نازک و لباسهای شیک میگفت مکانیک قبول شده. گفتم کارم در آمد. باید تمام تراشکاری و جوشکاری کارگاهایش را خودم انجام دهم. گذاشتم برود جلو زودتر از من برای کارت دانشجوییش عکس بگیرد گفتم تهرانی هستی نه از اهواز اومدم پس چرا انقدر سفیدی همه ها که سیا هستن گفتن برویم دانشگاه انتخاب واحد کنیم یک نقشه بزرگ هم دادن دستمان تا توی این دانشگاه در اندشت گم نشویم راه که افتادیم گفتم چرا مکانیک زدی همینجوری فنی فنیه دیگه وقتی قرار باشو مهندسی بخونم دیگه چه فرقی میکنه. چیز دیگه ای دوست داشتی بخونی؟ آره، موسیقی. آخه مکانیک خیلی فنیه. باید بریم تو کارخونه کار کنیم. اینطوری نیست که تو فکر میکنی هممون آخرش میشینیم پشت میز نقشه امضا می‌کنیم. توی دلم گفتم عمرن بشود با این دختر پایی پایه‌ای هیچی نیست. باید به فکر یک دوست دیگر برای خودم باشم. دانشگاه انگار ته نداشت. هرچه میرفتیم به دانشگاه نمی‌رسیدیم. لیلا انگار هزار سال دانشجو بشه بی‌تفاوت دنبالم نمی‌آمت. من مثل زندانی های آدم ندیده با خوشحالی از این آن آدرس میپرسیدم. نمیدانم برای چه ذوق می کردم. برای ساختمان های آجوری با دیوارهای آبی سرد برای صندلی های یکی در میان شکسته ی کلاس ها. برای پسرهای لاغر و دراز که عین نصف نصفه درآمده داشتند و پیراهن های روی شوار آویزان بود یا دخترهایی که ریخشان هیچ فرقی با دخترهای دبیرستانمان نداشت. گفت تو کجایی هستی؟ رشتی؟ خوابگاه میری؟ نه قرار مامانم بیا تهران خونه بگیریم. خوش به حالت. من بعد برم خوابگاه. پدرم دوست نداره تنهایی خونه بگیرم. تحویل من گرفته بودن. دانشکده پر بود از سال هایی که آمده بودند برای انتخاب واحد کمکمون کنند. گفتن برویم سایت کامپیوتر تا بیایند. کنار در سایت دختر توپلی با مانتوی دراز سرمهای و ابروهای پر سرگردان ایستاده بود. کوله پشتیش را با یک دست بغل گرفته بود و ناخن‌های آن یکی دستش را می جوید. گفتم الان است که بزند زیر گریه. پرسیدم: تو هم مکانیک قبول شدی؟ دستش را آورد پایین و گفت: آره. چشمهایشهایی از صورت من میرفت به صورت لیلا و برمیگشت. گفتم ما هم همینطور. انگار که دنیا را بهش داده باشند صورتش شل شد. آرام گفت: میدونین دستشوی کجاست؟ نه، از مسئول سایت می پرسیدی. خجالت کشیدم. مگه دستشویی خجالت داره انتخاباهد کردی؟ بلد نبودم بعد با بغز کمی به چپ چرخید و بدون اینکه چیزی بگوید گوشه مغنهاش را یواشکی نشانمان داد گنجش کار دست مغنهاش داده بود لیلا گفت عیب ندارد معلوم نیست گفتم عیب ندارد زشت از روز اول جلو این همه پسر مزخرش می کند رفتم از مسئول سایت جای دستشوی را پرسیدم مغنهش را شست خواست آن را دوباره سرش کند گفتم سب کن. موهایش را که داده بود بالا و همه را با کش جمع کرده بود پشت سرش باز کردم و چتریهایش را با انگشت شانه کردم بعد مقره را سرش کردم و موهایش را کج گذاشتم بیرون آنچه چه وزی بود روز اول دانشگاه خودش را شبیه بچه مدرسه‌ای ها درست کرده بود روز قبلش من و مامان دو ساعت وقت گذاشته بودیم تا ابروهایم را مرتب کنیم لیلا بهش گفت چه خوب شدی راستی اسمت چیه شبانه چه اسم عجیبی کجایی هستی تهرانی. بابام عاشق شاملوه. اسم شعراش رو گذاشته روی من. شما کجایی هستین؟ لیلا اشاره کرد به من. روجا رشتی منم اهوازی پس چرا اینقدر سفیدی؟ من و لیلا خندیدیم. شبانه گفت میشه با هم انتخاب واید کنیم که توی کلاس هم باشیم؟ لیلا گفت آره فقط من هشته صبح نمیتونم کلاس بردارم. خواب میمونم. گفتم من هم همینطور. کسی میگوید ده نفر بعدی به ایستن در صف. دختری که شبیه کاترین دونا است جلو می آید مثل گیشاهای ژاپنی راه میرود با این ها. یکی نیست بگوید مگر مجبوری الان است که با سر بخور از زمین بلند می و دستش را می گیرم تا از روی جوی رد شود مرسی عزیزم میبینمت دارد خوابم می گیرد. اما شهر انگار تازه بیدار شده خیابان حافظ از ته نوفلاشاتو پیدا پیداست. ترافیک است و پر از صداهای ماشین و موتور آدم‌های جلوی در سه برابر شده‌اند یعنی این همه آدم میخواهند بروند فرانسه مردی می‌آید و داد میزند بیمه سفر دو زن می‌روند سراغش چانه می‌زنند بعد با هم می‌روند به کوچه کناری نکند من هم باید بیمه بگیرم برای یکی دیگر پول ندارم مدارک را یک بار دیگر نگاه می‌کنم نه نوشته بیمه حتما نمی‌خواهد کاترین دونو رفته تو دو مال کسی می‌گردم که دانشجو باشد تا او بپرسم دانشجوها وسط بقیه معلومند جوانتر و صدهترن و همهشان تنها هستند. پوش دستشان هم بزرگتر است. نفر بیست تا سی به ترتیب پشت میله ها بیستند. بیخیال پرسیدن میشم. لازم باشد هم دیگر کاری نمیتوانم بکنم. مردم راه نمی دهند. هزار بار ببخشید میگویم تا میتوانم راهم را باز کنم برای رسیدن به پشت میله ها شماره تمام کسانی را که آنجا ایستا میپرسم. می, پرسم. می بینن دارم از همه میپرسم؟ نمیآیند خودشان بگویند باید کجا بیستم؟ نفر بیست و پنجم را پیدا می کنم زن موسیل نیست با مانتو سفید و روسری ساتن صورتی پشت سرش می به پشت سری نگاه می پسری است که به نظرم دانشجو میآید شمارتون چنده؟ بیست و هفت پس درست رستیست شما هم می ویزای دانشجویی بگیرین؟ بله ما هم باید بیمه یه سفر گرفته باشیم؟ نه، فکر نمی کنم سرش را میاندازد پایین. خجالتی است مثل رامین است که وقتی غریبه می‌بیند قایم می‌شود و دور خودش مثل روبوکا پوسته آهنی می‌کشد ماما میگوید پسرم دختر است و دخترم پسر جایشان باید عوض میشد رامین قایم شده بود زیر پله‌های ایوان داشتم توی حیات با بچه‌ها بالا بلندی بازی میکردم که دیدمش اما بی وقت از مدرسه آورده بودش از همان موقع رفته بود زیر پله‌ها زانوهایش را بغل گرفته بود نگاه می‌کرد به گوشه حیات. من هم نگاه کردم اما چیزی نبود من داشتم ذوق می کردم از اینکه این همه آدم جمع شده بودند خانه ما صدای خنده و بازی هم گم می شد در صدای جیغ مادر جان و عمه فخری. مادرجان گریه می کرد صدا میزد محسن محسن می دانستم آخرش سرت را می دهی سر این کارها. مامان آمد روی ایبان موهایش به هم ریخته بود لبهایش سفید شده بود تو خط سیاه از زیر چشمایش کشیده شده بود تا چانه. بچه ها تا مامان را دیدند رفتن گوشه حیات و آرام کنار هم ایستادند. انگار مامان ترس داشت. صدایم زد. صدا نداشت انگار. عین خورده ها بود. دو سه بار دهانش رو باز کرد و صدایش در نیامد. آخرش توانست به رامین را ندیدم. ترسیدم بگویم قایم شده. کار بدی کرده بود حتما. گفتم نه ندیدم. مامان آمد پایین. دمهای پایش نبود پاهایش هی روی مزاییک های حیات پت پت صدا می کرد چند بار رامین را صدا زد صدایش در نمی آمد. با او صدا زدم رامین رامین امه فخری آمد روی عیبان و رو جیغ زد بابات کجاست رامین بابا رفته بود منجیل برای سوپر بابا بزرگ جنس بیاورد جنس نیاورده بود مرده بود جوان مرگ شده بود برایم فقط چشم های سبزش مانده بود و ماهی شدنش. همین. مامان رامین را دید زیر پله ها. بلندش کرد. دستهای رامین را باز کرد. پیچان دور کمر خودش. گریه کردند. دویدم سمتشان. از پشت پاهای مامان را بغل کردم. گریه هم گرفت. اگر شبان لیوان گل گاوزبان را خورده بودم این فکرها نمی سراغم. نه که بیخودی نگرانم هی فکرهای بد باید حواسم را پرت کنم از پسر دستوپا چولفتی شماره 27 میپرسم چی خوندین؟ کامپیوتر اما برای عکاسی پذیرش گرفتم چه جالب منم یه دوست دارم که مثل خودم مکانیک خونده اما آشق موسیقی هر کاری کردیم نیمد با ما شرکت سرکار سرش را میاندازد پایین. اصلا برایش مهم نبود لیلا چی خوانده و چی دوست داشته نمیدارم با این کمرویی چطوری میخواد با شبستری حرف بزند. زن جلویی دو قدم جلو می میرود و از در آهنی رد می شود. پیرمردی دست روبرویامی ایستاده. با این کارهایشان مردم را اسیر نمی شد مثل آدم وقت بدهند تا این پیرمرد با این سن و سال اینقدر سرپا نایستد. میرسم به ته ها. مردی که اسمی نوشت رفته. بجای او پسری آمده با بازوهای عزلانی که دور گردنش زنجیر کلوفت نقره انداخته. جای شبانه خالی. عاشق عزله از دختره خلد نگاه میکنم به برگهای که دست پسر است در آن مینویسد صد و دوازده صد و دوازده دختری است که دارد به او التماس میکند بگذارد برود تو وقتی ساعت نه و نیم بوده نمیدانسته باید زود بیاید چقدر بیخیالند مردم چطور نمیدانسته باید زود بیاید ده نفر به من گفتند از شش صبح باید بروی توی صف تازه اگر هم نمیگفتند مگر من دل داشتم تا این وقت روز بنشینم خانه جلوی زن در چرخانی است با میله های کرم رنگ فشارش می دهد. در میچرخد میله ها پشت سرش با صدای بلندی قفل می‌شوند. از در آهنی رد می‌شوم. میمانم پشت میله ها. از بیرون صدای داد و بیدادی میآید زنی داد میزند که چرا مردی که میگوید از تور آمده ده نفر را جلوی خودش آورده توی صف مرد قسم میخورد که اسم همه را در لیست نوشته صدایشان هی بالا می روید. فرانسه هم که بروم از دست اینها راحت نمی‌شوم. کسی از داخل اشاره می کند که بروم تو. میله ها را که فشار میدهم وارد دنیای دیگری دنیا دنیای عجیب و خنک که صدای پیرمرد عصباده است که میگوید هر روز اینجا همین وضع است در آن گم می شود. جلوتر مردی اخمو نشسته پشت شیشه. ظلم میزند توی صورتم. انگار بهم به الهام شده باید چه کار کنم؟ پاسپورتم را می‌دهم تو. باز هم ظلم میزند به من. میپرسم، بله، نامه درخواست. خب مثل بچه آدم بگو چه میخواهی؟ کف دستم را که بو نکردم. نامه پذیرشم را از زیر شیشه رد میکنم. نگاه میکند. روی پاسپورتم یک تکه کاغذ می‌چسباند و رویش می‌نویسد سه. پاسپورت را میگیرم. در دیگری جلو است. قار علی بابا و چل دستنگار. دست انگار. از ده تا در باید رد شوم؟ بازش میکنم. یک نگهبان فرانسوی پشت شیشه است. روی جیب پیراهن آبی آستین کوتاهش نوشته سکوریته. روی شیشه را می خوانم. باید موبایل و کلیت هایم را تحویل بدهم. موبایلم را در درمیآورم و خاموش می کنم. کلیت ها را میگذارم گذارم کنارش. بعد از زیر شیشه ردشان می کنم. کیف و پوشه را میگذارم روی دستگاه. سکوریته موبایلم را چک می کند. لبخند می زند به من. حواس می کنم با او حرف بزنم. به فرانسه تشکر بلند بالایی میکنم معلوم از خوشش آمده. برایم آرزوی موفقیت میکند از اتاق شیشهای میروم بیرون جلوتر سالنی است با دیوارهای چوبی پر از آدم است میایستم یک گوشه آدمها خمیازه میکشند و هی زل به هم. معلوم نیست توی صورت هم دنبال چه میگردند هیچکس هم که با هیچکس حرف نمیزند همشون آماده قربت انگار ته سالون کاترین را میبینم. کنارش یک صندلی خالی است. کیفش را میدارد که بنشینم. بعد پاسپورتم را میگیرد و نگاه می‌کند. میگوید این شماره‌ها برای دانشجو است. من نفر دومم. نفر اول تازه رفته اون تو. در چوبی بزرگی را سمت چپ نشانم میدهد. همین که می‌نشینم پسر خجالتی می‌آید تو. مرا که می‌بیند جلو می‌آید. سرگردان می‌شود که چیزی بگوید یا نه. نمی گوید ردیف پشت سر ما مینشیند. به کاترین دونو او هم دانشجوست است. بر می گردد و توی صورتش می خندد. از کجا معلوم؟ شاید همینجا همه دوست شدیم با هم؟ شالم را می اندازم روی شانهام یک دور دور گردنم تابش می دهم. آینه را از کیفم در میآورم. شال خوب شده موهایم را مرتب می کنم کاترین دونو آینه را می گیرد. خودش را نگاه می کند. می گوید: مهم خراب شد. میدونی چی میپرسن؟ بچه ها میگفتن اینکه چرا میخوای بری و؟ چرا این رشته را انتخاب کردی و چیزایی مثل اینا رو میپرسن؟ کیفش را باز می کند. کیف آرایش در میآورد به چه بزرگی و ماتیک قرمزش را پررنگ تر می کند. من جمله ها رو حفظ کردم میترسم چیز دیگه ای بپرسن نتونم جواب بدم. نگران نباش. سوالای سخت نیست. مهم دانشگاه بوده که بهت پذیرش داده. شبستری همین زنی که کار دانشجو را انجام میده فقط مدارک رو چک میکنه تو فیش گرفتی؟ نگرفتم باج را نشانم میدهد چند نفر پول به دست پشت پشتها اند. منتظر میمانم تا نوبتم شود مرد تاسی پشت صندوق نشسته کراوات قرمز دارد پول و پاسپورت را که میدهم فیش را میدهد میگذارمش توی پوشه قرمز روی کاغذها برمیگردم به پسر خجالتی می گویم برود فیش بگیرد. خودش که با کسی حرف نمیزند، آخرش فیش نگرفته می رود تو. می نشینم کنار کاترین دونو. نه که ازش خوشم بیاید نه، حرف میزنم زنم تا وقت بگذرد. کلمات رو می جود بعد میگوید. نصفشون رو نمی شندم. اسمش سایه است پنج سال از من کوچکتر است. درسش تازه تمام شده. پذیرشش برای زیست شناسی است. می گوید چون امایش پاریس است پدرش اصرار کرده او آنجا درس بخواند کمی که صمیمی میشویم دور را نگاه میکند بعد آرام میگوید چهار میلیون تومان به یک وکیل داده تا برایش پذیرش گرفتند. چهار میلیون تومان چه خبره خب خودت پذیرش تو میگرفتی زنی با بلوز و دامن و موهای اصلی سشوار کشیده از در کناری میآید بیرون چهل ساله میزند است از چیزهایی که شنیده ام می شناسمش از اخم این قدر توی همش از اینکه سر و سینه را میدهد بالا و راه می رود نگاه هم به هیچ کس نمی کند. شماری دو بیاد تو درم پشت سرت ببند. برمیگردد بر میگردد توی اتاق سایه بلند می شود تیک تیک کنان می رود تو هنوز حواسم پیش آن چهار میلیون تومان نیست که به وکیل داده چهار میلیون تومان چند تا هزار تومان می شود. تا. یعنی مثلا پنج تا شاگرد جدید هر کدام ده جلسه یا مثلا چهار ماه کار تو که شرکت. از هشت صبح تا پنج بعد از ظهر. شبانه گفت گفتن تمام وقت استخدامم میکنن. دیگه فوق نمیخونم. خسته شدم از درس خوندن. میرم سر کار. بازم نیرو میخوان تو نمیای؟ امتحانهای ترم آخر را داده بودیم. شبانه پاره وقت کار میکرد. قرار بود بعد از درس استخدامش کنن. اولش گفتم راست میگوید، بگذار بروم سر کار مهندس میشوم خیال خودم و بقیه رو را راحت می کنم اما راضی نمی شدم راهی جلون باز بود که کار میبستش. ته همه چیز نقطه میگذاشت گفتم نمیتونم شبانه دلم راضی نمیشه فوق میخونم بعد میام سر کار تو که درس خوندن رو دوست نداشتی دوست نداشتم اما فکر این دانشگاه لعنتی ولم نمیکرد. چیزی توی دلم بود مثل هرس، مثل حسودی نه که حسود باشم نه اما انگار مسابقه داشتم با خودم یا با آنهایی که فوق می‌خوندند فوقم که تمام شد انگار دیگر آب مرا برده بود کم بود برایم رفتن و دکترا گرفتن مانده بود مثل گیم هر مرحله‌ای که رد میکردم مرحله جدید جلو باز می‌شد انگار سراب است آرزوهای من هنوز بهشان نرسیده دلم یک چیز دیگر می‌خواهد باید از ایران می‌رفتم راه برگشت نداشتم. بابای یه شبانه گفت اینقدر خودتو عذیت نکن. قانع نباش اما راضی باش. نه قانه بودم نه راضی. همینش بد بود. نمی توانستم مثل شبانه بگویم درس نخاندی هم نخاندی چه اشکالی دارد. یا مثلا بگویم همینجا هم درس بخوانی چیزی نمی شود. قناعت حالم را به هم می زد. پیرم می انگار. همیشه یکیچ عقب بودم از خودم. باید میدویدم، باید به خودم گل میزدم، زدم، پذیرش گرفتم، این یکی دیگر آخری است. دکتورا را که بگیرم همه چیز تمام میشود، از صبح تا اصر میروم سر کار، بعد مینشینم با خیال راحت فیلم میبینم، هفته یک بار میروم آرایشگاه، هر ماه هم میروم سفر، نمیدانم کیشلوفسکی بود یا کی میگویند بعد از ساختن فیلم قرمز دیگر بیخیال شده بود گفته بود میخواهم بروم یک جای دور توی یک ویلا بنشینم روی مبل هی سیگار بکشم و مشروب بخورم تا بمیرم دکترایم را که بگیرم مثل او میشم چه کیفی دارد اینقدر راضی بودن آدم دیگر هیچ کاری در زندگی ندارد فقط می ماند اشق و حال و مردن در باز می شود کاترین دونو رو میآید بیرون کلافه و عصبی است برو تو باید انگیز ناممو دوباره بنویسم. گفت حتما باید دست نویس باشه میروم تو آن طرف در درست مثل یک خانه کوچک است در یک کشور دیگر خارج است اینجا هم آدمها فرق می کنند هم شکل و شمایل اتاق یک دست مبل وسط حال چیدند. چند سیاه روی مبل ها نشستهاند و با یک زن فرانسوی حرف می سرگردانم حواسی هیچ کس به من نیست از کی باید بپرسم معلوم نیست؟ در اتاقی باز می شود. زنی می آید بیرون. به فرانسه میگویم با خانم شبستری کار دارم. یادم می ماند بگویم ماد مازل نه مادام تا ادبی نشود. میگوید منتظر بمانم بعد غیب می شود. صدایی از پشت سرم میآید دنبال من بیا. میچخم شبستری است چند کاغذ دستش است نگاه هم نمی کند. با عجله می روید در یکی از اتاقها دنبالش می مینشیند. مینشینم روی صندلی روبرویش. دستش رو دراز میکند، پوشه را باز می کنم. اصل مدارک را می دهم دستش، ورق میزند. زند، همون اول چند تا از کاغذها را می در سطل آشغال زیر میزش، کپیها، دو نسخه را می دهم، یکی اش را پس می دهد، نامه هم را یک دستش میگیرد، رزومه را دست دیگرش، تونتونت تند میخواند. توی این چند سال که درس تموم شده بود چی کار کردی؟ کار کردم، کجا؟ میخواهم بگویم درس میدادم ریاضی و فیزیک به بچه ها. بگویم فکر می کنی این همه پول رو از کجا آوردم؟ بیچاره شدم تا جور شد. اما حرفم را میخورم. خورم. هر کار غیر مرتبط به رشته تحصیلی امتیاز منفی دارد. توی یه شرکت مهندسی گواهیشم همونجاست. همونجاست. اینجا نوشته نه ماه کار کردی. تاریخ فارغ و 3 سه سال قبله. زبان میخوندم. عبرو رو بالا میاندازد که انگار به من چه خودت داری گند میزنی به زندگی خودت دلم میخواهد یک لحظه بردپیت پیت فیلم فایت کلاب بشوم و صورتش رو با مشت بیاورم پایین مدارک مالی همیناست که دستتونه همین چیز دیگه ای لازم دارین چیزی داری نباید عصبانی شوم کارم گیر است پیشش جابجا میشوم روی صندلی نفس عمیق میکشم شمرده شمرده میگویم چیز دیگه اگه باید باشه بگید میارم پرینت حساب پول زیادی توش نیست بیارم من نمیدونم بد نیست باشه خودت میدونی مدارک محل سکونت رزرواسیون خوابگاه هم همونجاست باید قطعی شده باشه شما از همه همینو قبول کردین اجاری یک سال رو پیش پیش می تا رزرو قطعی کنن. به من مربوط نیست قانون اینجا همینه انگشت اینجا فشار بده دستگاهیست است که برای گذاشتن چهار انگشت جا دارد انگشت هایم را رو رویش فشار می دهم پوخت دست چپ می گذارم دو, دو تا تو بزار وسط؟ اینجا را نگاه کن. کف دستش را بالا آورده نگاه که می کنم عکس را می گیرد. نه وقت میکنم عینکم را بردارم نه دست بکشم به موها بلند میشود که برود برود دیگر دستم به هیچ جا بند نیست میگویم مدارکم و کی بیارم. هر چه زودتر برای کی وقت بگیرم وقت نمیخواد بذار توی پاکت بده دم در دم همین در کی جواب میدید معلوم نیست از سه هفته تا سه ماه من چهل روز دیگه باید سر کلاس باشم جواب نمیدهد میرود توی حال. دو میروم سیاه پووست ها رفتهاند در را باز می کند صدا میزند شماره چهار پسر خجالتی بلند می شود میروم بیرون کاترین دونو می جلو کاغذش را در هوا تکان میدهد بهشب سری میگوید نوشتمش صبر صدات میکن تا میآید چیزی بگوید در را میبندد کاترین دونو میگوید چی شد؟ بعد جوری دیوونه بود بیچاره آره مریضن همشون حالا چی بهت گفت؟ هیچ. باید بازم مدارک مالی برش ببرم. خوابگاهم باید قطعی کنم. خوابگاه قطعی میشه بدون پول؟ اونو ول کن. ببین، یکی رو پیدا کن توی شهر دانشگاه. بهش بگو یه نامه بنویسه که میزبانی تو رو قبول میکنه. کارت اقامت و اجار نامه و قبض آب و برق خونه‌ش اسکن کنه و با نامه برات ایمیل کنه. اینطوری درست میشه؟ آره، منم همینو گرفتم. کی رو در تولوز پیدا کنم در این وقت کم؟ پیدا میکنم هرس خوردن ندارد. میساخ گفت رفتن حزینه دارد. میخواستم مدارکم رو پست کنم. زنگ زده بودم به میساخ که تازه رفته بود کانادا. گفت اگه توانش رو داری شروع کن. اگه حزینش رو میدی. من همه زندگی مدادم. دادم. لیلا رو. میارزید؟ مکس کرد. بعد گفت نمیداند. کاش میگفت. کاش میدانست. راحت تر بودم آنطوری. نباید بهش فکر کنم. حتماً می ارزید و یَنَم یعنی میساخ دیوانه نبود که بماند. اگر می‌دید نمی‌ارزد برمیگشت حتما لیلا هنوز هم منتظرش مانده. نباید جا بزنم. فقط یک کار دیگر مانده. علکی که نیست، می‌خوام بروم یه کشور دیگر زندگی کنم. می‌گویند از آدمی زاد هر چیزی برمی‌آید. می‌تواند دریا را خوش کند، کوه را بردارد یا چه میدانم درخت‌های جنگل را گره بزند به هم. جور کردن مدرک خانه که چیزی نیست باید زنگ بزنم به سامی را حتما میتواند کسی را در تولس پیدا کند نگاه می کنم به ساعت از یک گذشته باید بروم شرکت باید خودم را نشان مقدم بدهم تا باز به شبانه غور نزند که این دوستت در چرا درست نمیآید سر کار شب هم باید بروم خانه سوگل فردا امتحان ریاضی دارد شاید هم نروم اگر همینقدر خسته باشم نمیروم اما نمی شود، مادرش ده بار زنگ زده باید های ارسلان را هم زودتر بدهم یک وقت شبانه میخواهد با او به هم بزند توی رودرباسی این پولها میافتد میافتد. به سایه می گویم من باید برم سر کار، بعدم می بینمت. شماره هم را می گیرد، در خروج را پیدا می کنم نکه تو آمدن خیلی سخت بود، دلم نمیآید اینقدر راحت بروم بیرون دلم هوای لیلا را کرده بس که یاد میثاق افتادم امروز. لیلا اصر روزنامه قرار دارد باید بهش زنگ بزنم. شاید برسیم ناهار بخوریم با هم بعد هر دو برویم سر کار. در را باز می کنم. دنیای بیرون دنیای واقعی است پر از آفتاب داغ مرداد و صدای فریاد تاکسی های دربست.